خطاب ای از گوپال داس به پیش از اینکه به بحث امشب بپردازیم باید بگویم که ذهن تو در حال رسیدن به بیداری کامل است اکنون تو ذهنی هوشیار داری که با قدرت نفوذ خود می تواند رازهای درونی زندگی را ببیند ذهن به قدرت اک گرشوده می شود و به عمق موضوعات ذهنی و بینیوی مختلف که در برابر آدمی واقع میشوند نفوذ کند این قدرت یک است که دائما از مجرای تو در کار است ذهن تو قدرتی نافذ از خود به ظهور رسانیده است که میتواند با سرعت به منشع و منبع هر سوالی که مطرح شود دست یابد و قادر است پرده اسرار هر مغوله ای را بیدرنگ رنگ اکنون پس از سال دراز رهایی از تمامی بارهای منفی ذهن را تجربه میکنیم. اینک بیا با هم به طبقه اسیری سفر و با دوستی قدیمی از جهان مغرب زمین دیدار کنیم بیا روزارتارس و انگشتانش چشمان مرا بست سپس دستم را در دست گرفت وقتی چشم گشودم سرزمین نورانی عجیبی از اواله درون در مقابلم بود در باغ زیبایی ایستاده بودیم و مردی با قامت کشیده و بلند مارا نظاره میکرد چهرهش آنچنان تابناک بود که به سختی میتوانستم آن نگاه کنم چشمانش چون دو شمشیر شعل ور و ریش و موهایش به طلای مذاب میمانست زیبایی او هیبتی تابناک داشت که جوهر کلام بیانش در نمیآورد. چه کسی میتواند زیبایی این روک را به توضیح کشد به چاوکی پیش آمد و استاد را همچون برادری که سالیان دراز ندیده باشد آغوش گرفت استاد دست گوپالداس را فشرد گوپالداس با مهربانی به من نگاه کرد اما زیبایی و نوری که از او ساطع میشد نمیگذاشت نگاهم نگاه هم را به چهرهش نگه دارن زبازارتارس گفت او آمده است نیاموزد گپالداس در حالی که ما را به زیر سایه نشاست دخش درخت راهنمایی میکرد گفت من تو را آموزش خواهم داد چمن رنگ سبز دورخشانی داشت شمشادهای بلند اطراف باغ دلپذیری را آرایش کرده بودند و هزاران پرنده نقمه های شیرین خود در میان شاخ و برگ درختان مینواختند از بالای شمشادهای اطراف باغ در یک سو مناره های برازنده ساختمانی به سبک گوتیک نمایان بود. سقف آن با نوری طلایی رنگ می‌درخشید. ناقوس بالای امارت زنگ شیبی نمی‌نواخت. وجد و سروری شاهانه حس فما بود. گوپالاس به حالت عبادت نشسته بود و قدرت متعالی که از وی می میشد. آرامشی اصیل به همراه می آورد درس باعث و قهوه ای رنگش را در هم گرفت و بر دامن خرقه سفیدش نهاد که به تابناکی برف بود سرش را بلند کرد و صدای شگفتاسایش راز و نیازی را زمزمه می کرد ای سود تو ای خداوند عظیم همه عالم. جمع را فیض خیش برکت ده عشق خود را بر زبانم دفرست تا فقط والاترین سفایش شکوه و برترین سپاس از حقیقت رحمت شیرینه را ادا کند نهایت لطافت بر چشمان جاری گشت و لبانش به سخن گشوده شد نوری طلایی رنگ همچون قطرات باران در اطراف سر شاهانهش موج می زد. باران زرین رفته رفته نورانی تر شد تا به خرقه ای بدل گشت که تراکم نور آن تنها در ناحیه صورت تا به حدی کاهش میاد که چهره او در میان حال ای سفید دیده شود. صدای دلپذیرش در میان نور قوتور شد رفعت شکوه مند این عالم خداوندی در نظر روحی که برای نخستین بار از مرز میان جهان خاکی و اولین عالم از سرزمینهای حقیقی روح گذر می کند و خیرت کننده می نماید از روی ملکوتی نظاره کردن صورت خدا برای نخستین بار ماجرایی بس شکوه است کلامی برای بیان آن به کار نمیآید. تنها تحت راهنمایی یک خدامد حقیقی می توانی در میان نور حیرتابر آفتاب کیهانی بیستی و زیبایی پدر حقیقی را نظاره کنی روح و و مسکین به این جهان قدم می دهد فارغ از حواس، از جسمانی گرفته تا ذهنی اینک باید در برابر تخت سلطنت مقام خدایی این جهان بیستد خدایی که با رحمت و شفقت به زیر نظر می گیرد و شایستگی هایش را در سفر به خدا به واقعیت متعال مورد قضاوت قرار میدهد. روح اینک مجالب و داناست پنها جلوه ای که از میان عناصر انسانی به همراه اوست احساس می باشد. برای نخستین بار از ساعتی که منزلگاه خدا را ترک کرد آلود حقیقی خود را برتن می کند ای که از قماش خداوندی پدر متعال است جوهره خداوندی خدا عشق است. عشق قدرت مطلق است این قدرت عبارت از سیال ای خالص و پیوسته از روح خداوندی است که از پای سریر خدا جاری است و منچه آن در ارتفاعات بینام جهان روح حقیقی جای دارد همه روح‌های ساکن در عقالیم مینوی از عنصر آسمانی تناول می‌کنند این اسیر شهد قدرت خدای یگانه ماست با از قطب جهان روح حقیقی از جریان عظیم عشق دو جویبار منشعب می شدند یعنی اونصار مینوی با اونصار مادی اختلال می آود بنابراین ناخالف داد می شود تحتانی ترین قطب این بخش از عالم هستی که مادی نام دارد زین هار که عشقی که از آن سخن می صورت خداست در دوران واسطان در این باره سخنی گفته بودم که هنوز در پی آن کس می گردم که بتواند صورت سودماز را نظاره کند تو که از حکمت متعال برخورداری می دانه که من نه از فضیلت سخن میگویم و نه از سیرت اینها انصارهایی هستند که در راه شکوفایی بشر به سوی کمال مفیدند پس از چه سخن می گویم؟ عشقی که سراسر جهانهای مینوی را انباشته هوشی عظیم متعادی و اسرارآمیز است هر قدیسی آن را در عوالم کیهانی تجربه می کند برترین مطلوب آدمی از عشق همدلی و است که آزادانه به سوی تمامی مخلوقات جریان یابد. با این وجود هنگامی که عشق را همسنگ با میزان شکوفایی بشر به سوی تجربه ای با این طبیعت کیهانی خواهی دید که هر بشری در هر مرحله از شکوفایی مینوی خویش تنها می تواند میزانی از عشق را که دوزه اجازه بدهد به ظهور برساند آن روی خداوندی که اعتقاد آدمی را به مبارزه میطلبد به زبان ساده بگویم که عشق خالص سودماد در اقلیم حقیقی خیش است واقعیتی که تردیدها را برطرف می پند. چون اینش نور سپید و نقمه است که دیده و شنیده می شود این قدرت راه حقیقت است جویبادی از شهد آسمانی که از سریر خدا جاری است پس ای برادران خوبم می بینید که راحتی می شود گفت هنگامی که برشه از حقیقت را که می انگارد در حقیقت نادرست می بیند هرگز به حقیقت نخواهد رسید و کرکرانه در تاریکی دل مال روی می کند مانند خواستگاری که در ستیز توفان به دنبال خانه محشوع میگردد. اما روح در جستجوی رهایی و رستگاری است آری برادران من اینجا که جوهره ذاتی طریقی که بر عشق نور و صوت خداوندی بنیان نهاده شده مشهود میشود آری ای روح های نجیب شما رهایی را در نور رستگاری را در صوت خواهی یافت. پس با اندکی توضیح دقیقتر می‌توان گفت روح پس از وحدت با قدرت خدایی از احصارت آزاد می شود و با خدا شدن رستگار آیا خطرات جستجوی نیهکاری حقیقی را می بینی؟ هی هات. من جایگاه خود را به همان میزان بر این جهان بینی اصرار میکنم که خالیایی هیچی چون دیشه های آن در هیئت پروردگار عظیم کل عالم بستوار است آنکه هم فارغ از نگرانی است و هم بیخبر از توده های گوناگون اشکال حیاتی که در عرصه عظیم خلقتش به سر میبرند او میداند که هر ذره ای در جایگاه بالحقی خود قرار دارد و هنگامی که وقتش فراراست دوباره به حضورش بازگشت خواهد کرد. همان گونه که در اسطوره بازگشت فرزند ناخلف به خانه پدر آمده است. پس با تو میگویم که بدون تماس با کلمه رهایی حاصل نمیشود و این بجز به یاری یک معلم میسر نیست. حس از مرک هیچ تدبیری در راستای رهایی معنوی امکان پذیر نیست مگر اینکه دست کم در هنگام زندگی در این تن آغاز شده باشد بینلت علت، که قدرت کلمه را دریافت نکرده باشد، باید به زمین بازگردد تا فرصتی دیگر بیابد و این فرصت به دیدار با معلم نصیب او کردد این قانون خداوندی است و باید این را نیز بدانی یک استاد نمیتواند به یک جویند کلمه را ارسانی دارد مگر اینکه بتواند او را از میان طبقات عبور داده و سوی خدا هدایت کند. بیشتر مذهب تماس با کلمه زنده یعنی ارتباط با ماد متعال را از دست داده هند باید توجه خود را بر روی کلمه متمرکز داری کلمه ای که از قماش جهان حواست نیست چون فناناپذیر است جوهری که در عوض اسیر کردن بشر، او را از هر قیدی آزاد می‌سازد و رهایی از چرخ گردون و فناناپذیدی برایش به ارمغان میآورد. ای عزیزان این گونه است که راز رهایی و رشتگاری در کلمه و آموزگار نهفته است این آزادی به معنی رهایی از چرخی اندوه و نخوشی هاست. آزادی به سربردن ابدی در بهشتی از فیض و به اراده خیش اما بدون کمک یک خدا مرد زنده بشر نخواهد توانست از چرخی همیشه در گردش تولد و مرگ فراعت یابد تسلیم کامل به یک خدا مرد اصیل راه کامل است. ایسار کردن بدون اینکه حتی یک بار به با حاصل آن چشم داشته باشی، آغاز فنا نافذیبی است. ای بشر، کلمه معنوی، صدای روح خداوندی یا جویبار مقدس عشق، تنها راه رهایی توست. شاهراه راه, راه باشکوهی که برای ورود تو باز شده تا بر آن راهی بازگشت به خدا شوی. این گونه می توانی همکنون و در همینجا آزادی مینوی را کسب کنید. پس ای دوستان مقدس من باید بدانید که پرانا یا جویبار نفس از مشتقات مادون اک یا جریان کلمه خداوندی است عملکردهای پرانا به بعضی از فعالیتهای کالود خاکی محدود می شود با استفاده از شیبه های پرانیک تنها می توانید تا ارتفاعات نواهی تابستانی طبقه اصیدی یعنی اندکی فراتر از جهان خورشیدها سعود کنید در بسیاری از موارد استفاده از قدرت پرانا روح فردی به زیبایی روح خداوندی بیخورمتی کرده است او در تجربه خود با درجه هنگفتی از افراد خود را در وحد با منشأ روح بیپایان خداوندی تصور کرده و به دینگون حرمت و ستایش آن را زایل کرده است او تن به خود ستایی سپرده و در پس پرده قرور و تکبر فراموش کرده که تنها قدشه ای از اقیانوس عشق و رحمت خداوندی و فقط یک شعا از آفتاب متعالی است که به همه عالم حیات و نور میبخشد این گمگشتگان آنچنان مست تصور خدا شدن گشتهاند که دیگر چیزی را ستایش نمی کنند و همچنان در جهل تاریک خود و در زندان تن محبوس خواهند ماند تا روزی که خدا مردی ظاهر شود و به یاریشان حمت برزد کلمه نخستین تجلیه سودماد است و تمامی آفرینش این جمله اتر و سایر انصرها از کلمه مقدس خدا پدید آمدند کلمه حیات و روح هر چیزی است که نرطبه نخستین تجلیه سودماد آفریده شد باز هم میگویم که کلمه مقدس عامل محرک ازلی و تپش نخستینی است که از سود نازل شد. اولین علت حرکت رنگ و شکل حرکت ارتعاشی کلمه منحصر به گردون است که در آن ماده در اشکال لطیف، خالص، ناخالص و خشن وجود دارد ارتعاش محصول تماس روح خداوندی با ماده است. توضیح ساده تر آن این است که ارتعاش تجلی کوششی از جانب کلمه مقدس روح خداوندی است که از بالاترین طبقات بهشت نازل می شود تا غلاف جسمانی کلمه را در آسمانی های مادون برگیرد به روشنی می دانیم که این صوت نه تنها مانند صوت فیزیکی حاصل یک حرکت ارتعاشی نیست بلکه در واقع محرک نخستین تمامی آسمان های لایتناهی است و همین عنصر در پیشبرد برد هدف آفرینش در طبقات جسمانی عامل حیاتی است به منظور عهدهداری وظایف گوناگون در آسمان های تحتانی جریانهای صوتی متنوعی از این حرکت ازارشی مشترف می شوندد ولیکن جریان اصلی کلمه خداوندی سرمنشه تمامی جنبشها میروها نور، صوت و عناصری است که در طبع آن در آسمان سوم و مادون آن صورت هستی یافت. تو کُنچکار بنشاتی حقیقی هستی. متعالیترین هدف روح اسکان در بالاترین منزلگاه آسمانی در اقلیم حقیقت, حقیقت است. روح به مثابه شعاعی از نور پدری که در نقطه نامعلوم از گستره آفرینش هستی یافت است. در های جسمانی محصور در نیاز ها و در چارچوب نیازها و تمتعات آن اسیر گشته حال اینکه همین غلافها باید فرصت بازگشت وی را به خانه بهشتیاش فراهم سازند شعاهای روح خداوندی در هزاران هزار شکل در گستره آسمانها اقامت گزیدند این شعاها در کالوتهای آشکار حضور دارند که آفرینش را در لایه های گوناگون فضا تشکیل میدهند و آنها قدرت حرکت، اندیشه، استدلال و حیات می بخشند به عبارتی ساده تر، کل آفرینشی که از بالاترین تا پایینترین طبقات گردون گسترده شده توسط شعاخ های کلمه خداوندی یعنی روح هایی که هر یک یک پرتو از حضور سود مارند هستی و دوام می و با جدایی روح از قلافی که در آن مقیم شده حیعت مخلوق آن کال بعد به زوان می گراید همه آفرینشی که بشر، گیاه، حیوان یا معدنیات می بیند مشاهده و حفظ می کند منشا و قدرت نماب خود را به کلمه یا روح خداوندی مدیون است و دوام خود را از آن دریافت می کند با جدایی یا پسنشینی حضور روح خداوندی آفرینش منحل می شود به منظور سلوک به توی سودماد ابتدا باید شعاع جریان روح خداوندی را بیابیم و قد آن را گرفته مسیر بازگشت به خدا را دنبال کنیم بشر باید ابتدا خیش یا روح درون خود را بشناسد و سپس خدا را که سرمنشه روح خداوندی است این اصل به می توان گفت که شاهراه رسیدن به روح خداوندی و سپس نیل به سرچشمه آن و پدر متعال کل کاینات درون عالم تغییر یعنی در کالبد خود بشر تعبیه شده است جریان روح خداوندی و جریان‌های فرعی چری که نمایندگی آن را در های گوناگون به عهده دارند از سوی بالا به پایین یا به عبارت دیگر از درون به بیرون سازمان‌های کالبدی جاری‌اند لذات منظور نفوذ به مرکز آدمی باید جهت این جریانات را به سوی بالا و منشه اجابیدانش باز کرداند این به معنی دست برکشیدن از دسته ای از امیال به قصد ادامه سلوک جانب خانه حقیقی است در دنیا زندگی کن اما استفاده از جریان کلمه خداوندی را تا میزانی به کار بگیر که برای زندگیت در آنجا مفید باشد این چنین است که شکوه رستگاری حقیقی در نیل به خدا در بالاترین درگاهش نهفته است این رستگاری حقیقی و کامل است بسیارند کسانی که هنوز از آسمانهای جهان سوم در نگاه در یکی از منزلگاه میان راه خدا متوقف می شوند و می که به خانه حقیقی خدا رسیدند معذالک هر یک از این بهشتهای تحتانی منزلگاه حقیقتی نسبی است و در رهبری خدامرد روح طبیعتا حقیقت ظاهر و نسبی را به مصابهٔ نهایت خلوص و حقیقت میپندارد فریفته این پندار روح در آنجا انتظار میکشد تا پس از گذشت اعثاری دراز به چرخه مرگ و تولد بازگشت نماید یک جوینده صادق و صمیمی رگز در هیچیک از مراتبی که در آن نور و تاریکی وجود دارد توقف نخواهد کرد. بلکه باید سفرش را تا رسیدن به نواهی خالص نوری جاویدان و سهرامیز ادامه دهد که در آن تاریکی معنایی ندارد این خانه خدا یا اکمتعال در هیئت خالصش می باشد خدا به کسانی که از سمیم قلب دوستش دارند عشق می و از آنان حفاظتی بی پایان به عمل می آورد. او عاشقانش را به سوی خیش می کشاند به سوی کانون ملکوتی نور و کلمه خالص آنان که قلبشان از عشق دنیا آکنده است از این کانون دوری می کنند و به سوی پناد تاریکی و کذب در پروازند عشق حد و مرز نمی محدودیت برایش تعریفی ندارد و در قید و شرط در نمی‌آید. بسان به میل به گسترش دارد و در دهش و رفتار شریفانه دور پرواز است دانشمندان میگویند جرم و حرکت عوامل اصلی آفرینش‌اند این نظریه تا جایی که به جهانهای پاهتانی مربوط شود صحت دارد اما آنها نمیگویند و خود نیز نمیدانند منشأ این حرکت چیست حرکت نیاز به یک محرک دارد و این محرک همان عاملی است که ما آن را روح خداوندی یا کلمه‌ای خطاب میکنیم که به تن خورشید به بیرون فوران میکند. و نکته آن در جهان‌های مادون بهشت سوم از مجراهای گوناگون قانون‌ها یا خورشیدهای مینیوی و مادی ساطع و در گستره فضای تحت آن طبقه انتشار می‌یابد. کوچکترین اتم یا واحد توان به خودی خود شعاع یا جریانی است که در واقع از یک کانون مرکزی انتشار یافته، و از موهبت قدرت روح خداوندی برخوردار است. دانشمندان این واحد را انرژی نام اند. قدرت متجلی نشده، انرژی بالقوه یا پتانسیل است. هنگامی که در قالب فعالیت به ظهور رسید، انرژی جنبشی یا سینتیک نامیده می شود. هر این اصامی به کیفیت ذاتی نیروی خداوندی اشاره دارند که منشه و کانون آغازین همه ی آلم است. مثلا اتم هایی که در سیاره زمین ایفای نقش می کنند، از خورشید، یا بهتر بگویم خورشیدهایی هایی که بر فراز زمین قرار دارند صادر می شوند اینتون ها پیش از این که به صورت شوها یا جریان های انرژی انتشار پیدا کنند در مدار خورشید متجلی می شوند و بعد از آن شایستگی شرکست در کارکردهای های یا ایفای نقشی جز ای از یا کالبری را پیدا می کنند که با الهاق به هم به آن هستی می بخشند. جریان روح خداوندی که همواره درون هر یک از این اتم‌ها نهفته است، به این ترتیب در قهقرای های ماده قوتور می‌شود و نیاز به انگیزشی پیدا می‌کند که از جریان متعال ای به آن راه آبد که از قماش عالم اعلا و به کار بیدار کردن انرژی یا فعال کردن قوای خفته آن می‌آید. پس می‌بینی که قدرت یا نیروی روح خداوندی تمامی آن چیزی است که هست. واقعیت دهنده اصلی یا اراده نخستین دمیده شده در کل آفرینش این فیال حیات و زندگی همه چیز در کل عالم است معمای راستین خدا و روح خداوندی در این عبارتها خلاصه می شود سوگماد متعال امیانوس بی انتهای از روح عشق و شعف است که در جهان بینام بالاترین بهشت یافت می شود جریان اصلی روح یا کلمه از آن نشعت گرفته است روح نخستین اولین تجلی سودما در کل عالم جریان کلمه آفریدگار روزیرسان و نگاه دارنده ی کل آفرینش همان جریان اصلی روح است که از خدا به سوی عالم جاری است جریان صوتی حیات حلقه زنجیری است که خدای متعال را به فرزندی که مرید او شده است پیوند می‌دهد و او را در راه بازگشت به خانه پدریش در بالاترین اوالم یاری می‌کند. بعد نوبت به فرزند متعال یا خدامت می‌رسد که مجرای حضور و نماینده پدر متعال در هیئت انسانی و در طبقه زمینی است. هر از گاهی این فرزند متعال در میان آدمیان ظهور پیدا میکند تا از غرق شدن روحها در منجلاب ابعاد زیرین مادیات نجات بخشد و به سوی مراتب برتر سوق داده معالاً راهی منزلگاه خدای متعال سازند. جزء سوم این معما چلاست. روح در وضعیت آگاهی انسانی شعا یا قطره ای که از متعالی ترین روح خداوندی از اقلیم اشق و شعف به این عالم سقوط کرده و به رهبری ذهن و ماده در جهت انگیزش های آفرینش مادی از تمامی علوهیت حقیقی خیش قافل مانده است فقط آن راه که خدا مردی را بیابد که مرید را به نیایش خدا از طریق روح پیوند دهندهی که جریان صوتی حیات است بیدار کند به درگاه خدا باز می گردد. در وقت مناسب ماجرای سفرهای مقدسی را که در انفوان جوانی به هند کردم برای بازگور خواهم کرد ربازارتارز دستم را گرفت و دوباره به زمین بازگشتیم شب به خیل گفت و اتاقم را ت.